سلام نرگس عزیز تولدت مبارک برایت عمر پر تو توان با عاقبت به خیری آرزو میکنم از خداوند متعال میخواهم برایت در دنیا و آخرت بهترین ها را رقم بزند در پناه خدا سلامت و سر بلند باشیم نرگس عزیزم نوه قشنگم تولدت تو مبارک باشه میدونی ما در جون اون روزی که متولد شدی که از بهترین روزهای عمر من بود یکی از بهترین روزهای زندگی من بود وقتی رو تو رو تو بغلم گرفتم که انه دنیا رو به بغل من دادن عزیز دل من به تو بهترین زندگی من در عمر منی دوست دارم ان که صد ساله بشی قشنگم فدای تو اومدم در جون عزیز دلم نرگس قشنگم زیبا تو بهترین اتفاق زندگی منی تولدت مبارک باشه مامان صد ساله بشی به خاطر داشتنت هزاران بار خدا رو شکر میکنم بمونی برام عزیزم نرگس ای بیره دوست دارم آمان داری تو یکی هر قشنگ ترین اتفاقای زندگی منی تو تیکه که گونده هم منی تولدت مبارک باشه قشنگ هم همیشه خندون باشی همیشه شاد باشی همیشه سلامت باشی دوست دارم سلام نرگز چونم تولدت مبارک خوشبال مامان مهدیه و بابا که همچین دختر ماهی داره. انشالله همه ی لحظات زندگیت پر از آرامش و سلامتی و شادی باشه و به تک تک آرزوهای قشنگت برسی میدونی که خیلی دوست دارم اشق خاله سلام نرگس شونم. تولدت مبارک خاله نرگس تو از وقتی که خیلی کوچیک بودی من توی همه تولدات بودم شاهد بزرگ شدنت خانوم شدنت یه چیزی که توی تو همیشه داره توی وجود تو رشد میکنه مهربونیت و اینکه خیلی دختر با ادبی هستی و من افتخار میکنم افتخار میکنم واقعاً واقعا به مهدی برای بزرگ کردن تو دعا میکنم که... سال های پیشروت خیلی قشنگ باشه. همیشه همینجوری خوشحال بمونی. لبخند روی لبت باشه. و به همه آرزوهای خوبت برسی. کنار مامان، بابا و همه عزیزات. خیلی دوستت دارم. عزیزم.